بسم الله الرحمن الرحیم علم البيان التشبیح اولین درس علم بیان که هست؟ تشبیح هست و در بحث تشبیح در قسمت اول و درس اولش ارکانش رو درس میده به خاطر این گفته یک ارکانه یعنی ارکان تشبیه خب این کتاب البلاغت الواضحه دقیقا روش النحول واضح رو داره ابتداش چند تا مثال میاره بعدش یه بحثی رو میاره در اون بحث میاد اون امثله رو توضیح میده امثله رو چکار میکنه؟ بعد از بحث که ما خودمون نمیخونیمش چون در توضیحات رد میشه اون بحثا رو من وظیفه منه که مثلا بحث رو قبلا بخونم اونجا رو به فارسی ارائه بدن قوائد رو باید بخونیم مثل قوائد نحول واضح که چندین قائده داشت اگر یکی اون قوائدو یاد بگرفت دیگه آن دستشو بگرفتن در علم اینجا هم اگر یکی بیاد قوائد کتاب بلاغتو الواضح رو یاد بگیره خیلی براشتی میشه. عالی عالی میشه متوجه هستید یعنی شما باید باید این قواعدی رو که اینجا ما درس میدیم حتماً و حتماً اینا رو یاد بگیرید اگر قواعدو کسی از شما یاد نگرف به این معنا میفهمه که این کتابو علکی داره میخونه و رو اصلا اگر حفظ هم بکنید وقت داشتید احیانا البته هیچ موقع به زرارتون نخواهد شد اول کتاب بیان رو بیاره بعدش معانی رو بیاره و بعدش بدی رو بیاره خیلی کتابی بسیار بسیار درست علمی و ساده متوجه شدید در عین و کتابیز تقریبا زیاد بزرگ نیست ولی از اون جایی که تمرین آورده یا نمیدونم چیزای مختلف آورده دیگه یک خیبی بزرگ بینم خب پس دقت بفرمایید ارکان تشبیح رو در این درس قواعدش رو بیان میکنه این کتاب این درس دو قاعده داره یک بیاد تشبیه و توضیح میده بعدا بیان میکنه بی که ارکان چند تا تشبیح چند تا ارکان داره ولی از اون جایی که هدف کتابی بوده که واضحش بکنه از اسمش مشخصه با مثال واضحش میکنه که این ایک از بهترین شیوه هاست الامثله رو اول میخویم قال معری في المديح معری که از شعارای عربه انتا که في فی الضیائی و انجاوزت کیوان فی عنو المکانی بیگه تو بمانند خورشیدی در روشنایی اگر تو در علوو از کیوان هم گذشتی بالاتری سیاره در بالاتری سیاره کیوانه بالاتری سیاره چیه؟ کیوانه اینجا شاعر بیادون ممدوحش رو در روشنای صورت وصف میکنه و میگه که تو واننده؟ خورشيدي. وقال آخر شاعر ديگر بيگه أنت كالليس في الشجاعة والإقدام والصيف في قراء الخطوب بيگتو ماناً ديشيري در شجاعت. و در اقدام کردن و صیفی و مانند دچسی و حرف عطفه و به مانند شمشیر هستی فی قراء الخطوبه در کوبیدن مشکلات مصیبتها در ازبد بردن سختی ها در غلبه کردن بر مصیبتها خب ودر بيت السيفوم ميجي وقال آخر شاعر دينجر ميجي در مثال السيفومش كأن أخلاقك في لطفها ورقّة فيها نسيم الصباح مالند عندك أخلاقت در لطفش ودر نرمي آن بمانند نسیم صوبگاهیست یعنی آقا نسیم صبحگاهی چقدر معتر و چقدر دلنواز و زیبایه اخلاق تو هم همون به و نرمی رو داره و قال آخر و شاعری دیگه میگه که الماء الماؤ فی سفائن و جرى زائب اللجیل مثال واردناه من كرا، أربع، أربع كأنما، الماء في سفائن، وقد جرى ذاب اللوجيدي، ما ندّي كأب در صفا ما ندّي كأب در شيء، در سفاهش. بمانند چی هست؟ بمانند نقره گداخته شده ذوب شده الوجن یعنی نقره زائد که اسم فاعل معنی ذوب شده پس اینجا در این چهار مثال در هر چار مثال یا به عبارت دیگر هر چهار مثال برای چی هستن؟ برای تشمیح اول قواعد رو میخونیم بعدا میگیم که ارکانی که در چهار تا مثال آورده بود چی بودند؟ بیایید روی قواعد القواعد یک صفحه بعدی صفحه بیست من انشاءالله فردا کتاب خودمون میارم يك التشبيه تشبيه بيان أن شيئا أو أشياء شاركت غيرها في صفة أو أكثر بأداة هي الكاف أو نحوها ملفوظة أو ملحوظة دقق بفرميت دقق بفرميت بيجي التشبيه بيان إيه هست كي چیزی یا چیزهای شریک هستند با چیزی دیگر در یک صفت یا در صفات بیشتر التشمیح بیانو بیان کردن این هست انشه این او اشیاء که یک چیز یا چیزهای زیاد شارکت غیرها یک چیز یا چیزهای زیاد شریک هستند با غیر خودشون با چیزی دیگر فی صفت او اکثر در یک صفت یا در صفات بیشتر با چه چیزی به اداتت با وسیله ادات شما بیان میکنی که این چیز در فلان صفت با فلان چیز شریکه ولی اینو با چه ادات میکنی به اداتت با ادات تشبیه هی الکاف عباراتن از یک کاف او نحوها یا مانند کاف که در امثله آورده بود که انه روم که انه که شیری ملفوظتن او حالا چی اون بیان شده باشه لفظن چه لفظن بیان نشده باشه چه این عداد لفظاً عدا شده باشه چه لفظاً عدا نشده باشه م... میفهمیم اینا همه انواع تشبیح جا اگر هر یکی از این ارکانی که امروز نام میگیره حذف بشه خودش یک اسم خاصی میکره دو ارکان و تشبیحی تون ارکان تشبیه چند تا هستن؟ ما در تشبیه چهار روک داریم وحیا یک المشبه مشبه اگر من اومدم شما رو تشبیه به ماه کردم در زیبایی شما میشی مشبه اسم مفعول دیگه المشبه اسم چیه؟ شبه یو اسم فائلش میشه مشبه و اسم مفعولش میشه مشبه پس ارکان تشمیح اربعاتون ارکان تشمیح تا میباشن هیا یک عبارت از المشبهو یک مشبه دو والمشبه به مشبه به اونی که به اون چیز شبیهش کردن در این مثال خودمون ماهو بگن چی؟ مشبه به و یو طرف طرفی التشبیح. مشبه و مشبه به دو طرف تشبیح نابیده می شوند طرفه التشبیح چی نابیده می شوند؟ و عداد و سبب سفو رکن تشبیح عداد تشبیح هست مثل مانند کاف که در امثله اومده بود و چارو رکن تشبیح چی هست؟ واجه شبه هست چی اون صفتی که مشبه و مشبه به درشون چ هست بله مانند امثله مثلا دقت داشته باشید گفته بود انت که شمسی فی الضیائی و انجا جاوزت کیوانه فی عنو المکانی انت مشبه ماست الشمس مشبه به ماست کاف عدات تشبیه هست درخشندگی و شبه است. بله تو به مانند خرشی در درخشندگی یا مثلا به سال بعدی انت کلیسی فش شجاع انت مشبه هست کاف عدات تشبیه است، اللیس مشبه البهیست شجاعت هم چه هست؟ چرا اومده تو رو شبیه به لیس کرده؟ به خاطر شجاع یعنی تو مواند اون شجاع هست خوب پس صفتی که مشترک هست بین دو طرف دقت داشته باشید به اون میگن چه؟ وجه شبه. وجه شبه صفتی که بین طرفین یعنی مشبه و دو به مشترک هست میگن وجه شبه الى آخر نموذج یک نمونهی رو هم آورده یعنی به عنوان حل مسئله نمونهی رو آورده ولی خود من در درسای سخت امثل رو کلن حل میکنیم بغیره. نمونه رو معمولا بعد از قوائد میاره یعنی بعد از یک قوائد و توضیح داد نمونه رو میاره که شما رو بفهمونه که اون قوائد اجراش میکنه خودش نه هلا دقيقة تقولي قال المعر معرية الري... قال المعرية شو بيجي رب ليل كأنه الصبح في الحصن وإن كان أسود الطيلصاري شو بس عشان شو بيجي كأنه الصبح في الحصن جواك بمعنى الصبح هسدر زباي أعرف شكل شبه لباسش اسود هست طیلسان نوعی لباس هست خب اینجا دقت داشته باشید رب لیلی که انهو از در این مثال مشبهن به ما چه هست؟ رب اینجا تشبیه کرده شب و به به صبح پس در این مثال مشبه ما بیشه زمیری که در کعنه چسبیده که بر بیگرده به لیف که بر بیگرده به و صبح هم چه هست؟ مشبهن به ما هست کعنه هم هست؟ حسن هم چه هست؟ وچه ربا دیگه خودش نبود امید آخرین بدشه تموم بیشه بعدن بیشه درس بعدی که درس بعدی رو انشاءالله روز بعدی میکنی حالا دقت کنید و سحیل که وجنت الحبی فی اللونی و قلب المحبی فی الخفقانی بیگه سحیل یک ستاره است ستاره یه؟ اک سحیل یه آره سهل ما هم داریم یکی سهل ابن بیزا داریم نه؟ سهایی که خب دقت داشته باشید میگه و سهلونه ولی منظورش اینجا کدوم سهله؟ سهل, سهل شما نیست. منزورشون سهله ستاره است. کوچنعت الحب معنده رخصار محبو هست است. در چه؟ حب يعني محبوب حب يعني محبوب يعني حبيب وصهيل كواجنة الحب في اللون وصهيل بمعندي رخصار محبوبة در رنج وقلب المحب في الخفقاني وبمعندي قلب محب قلب عاشق در لرزیدن و تکان خوردن اینجا هم در مثال دوم سهل مشبه هست و وجنت الحب سهل رو تشبیح کرده به چی؟ این هم بیشه به کاف میشه چی؟ ادات تشبیه لون میشه چی؟ واجی سبح دو تا اینجا آورده بود ببینید و لون کاوجنا تل حب فی ببینید دقت داشته باشید این شد یک تشبیه، تشبیه دیگه هم اینجا وجود داره و سحیلون این وابعتفه و واب سحیلون که وزنت الحب فلانه و قلب محب قلب چرا مجرور بخاطر این که معتوف به وجنه هست پس هنوز ادامه داره این تشمیه سحیل ماننده رخصار محبوب هست در رنگ سحیل مانند قلب عاشق هست در خفقان ببینید و حرف عطف قلب دوباره مشبهان به هست قلب محب خفقان هم وجه شبه تشبیه دوفمه پنج تا آورد جمله ها فرق دارن دیگه نا خب پس این شد از درس اول انشالله در کتاب ساده ای اگر بطورید قوائد و حفظ کنید یعنی یاد بگیرید بیپرسیم انشالله عالی بیشه. بیشه انشالله